تو رامین آمد از گرگان سوی مر تویی بود باغ شادی از گل و سر تو گفتی هم که رامین باغ و ایوان ز بحر آن سنم بودند گریان بران باغ و بران ایوان بنالید نگارین رو بران بومش بمالید نپندارم که روزی باز بینم تو را شادان و بر تختت نشینم نفندارم نفندارم چه روزی باز بینم تو را شادان او بر تختت نشینم اما چو بسیاری بگفت و گشت نومید ز روی آن جهان آرای خورشید بنزد دژ چون آن آمد که شب بود شبش دیدار دلبر را سبب بود بدان سو شد که جای دلبرش بود به تاری شب نشان خیش بنمود خدانگه چهارپر بر ذهن به پیوست چو برق تیز بخشادش از او است. فرود آمد با من در سرایش نشستن در سریر شیر پایش چو داید دید چان تیر خوجسته چونان در تخت ویسه در نشسته بردان تیر پیش ویسه دلبر بدو گفت این همایون تیر بنگر رسول است این زرامین از آن رو این کمان او بجسته چو ویسه دید تیر دوستگان را بر او نامش نگاریده نشان را هزاران بوسه زد بر نام دلبر گهی بر رخ نهاد و گه به دلبر چرا امین تیر پرتابش بیانداخت سپاه دی اندیشه بر او تاخت که تیر من کنون یارد کجا شد روا شد کام من یا ناروا شد اگر ویسه شدی از حال ماگاه به صد چاره بجستی مرمرا را پس پسانگه گفت با دل کی دل من بده جان و مترس از هیچ دشمن به یزدان جهان و ماه و خورشید بدان مینو کجا داریم امید که از این دش بر نگردم تا بدان گاه که یابم سوی کام خیشتن را از این سر مانده در اندیشه در رام آن سو ویس بانو مانده در دا فسونگرده گفت ای جان مادر ترا بخته جفت و چرخ یاور کنون از دست سرمای زمستان نشیند دیدبان در خانه لرزان نباشد پاس بان اکنون عبر باند. به پیروزی براید ترا کان درش بکشای و پس آتش برفروز به شب بن مای رامین را یکی روز چون رامین روشنایی دید و آتش به پیش روشنایی ماه دلکش بدانستو که آن خانه کجای است و از آتش مرخبانش را چرای است چون این باشد درن در مرخبانی گهی سودش بود گاهی زیانی چون راه وصل جانان پیش گیرت قم عالم به جان خیش گیرد چو رامین تن شد در پای دیوار بدیدش گیس از بالای دیوار چهل دیبای چینی بسته در هم دو تو بر هم فکنده سخت محکم فروهشتند بر دل خست رامین برو بر رفت رامین هم تو شاهین دو آشق را دل از ناله بیاسود دو بیجاد لب از بوسه بفرسود دو دیواروی چون فرخار و نوشات بپیچیده به هم چون سر به شادی هر دو در کاشان رفتند به سیمین دست جامع زر گرفتند بیفکندند بار فرقت از دوش زمی دادند کشت اش رانوش. گهی رامین بگفتی زاری خیش ز درد عشق و هم بیماری خیش گهی ویسه بگفتی آن همه بد که با او کرد شاهنشاه موبت شب دیماه و گیتی در سیاهی چو دیوی گشت از مه تا به ماهی سگونه آتش از سه جای رخشان به خانه در گلفشان بود از ایشان یکی آتش ز آتشگاه خانه چو سرو بسدین او را زبانه دگر آتش ز جام می فروزان نشاط او چو بخت نیک روزان سیم آتش ز روی ویس و رامین نشان دود آتش زلف مشکین چو رامین روی ویس دلستان دید به کام خیش هنگام چنان دید سرودی گفت خوش بر رود تنبور به آوازی که برچندی دل هور چه باشد آشقا گر رنج دیدی؟ بلا بردی و ناکامی کشیدی به آسانی نیابی شادکامی به بیرنجی نیابی نیکنامی دلاگر در جدایی رنج بردی ز وصل دوست اکنون بر بخوردی همی گفتم بجا آور صبوری که نزدیکی بود فرجام دوری زمستان را بود فرجام نوروز چنان چون تیر شب را عاقبت روز منم از آتش دوزخ برسته بهشتی گشته باهوران نشسته مرا خانه زرویت بوستان است به دیمه از رخانت گلفشان است وفا کشتم مرا شادی برآورد مه تابان به مهرم سر درآورد. چو بشنیدین این سخنها ویسه دلبر به یاد دوست پرمی کرد ساغر بگفتین پر به عشق گرد رامین وفادار و وفاجوی و وفابین امیدم را فزون از پادشاهی دو چشمم را فزون از روشنایی بر او دارد دلم زان بیش امید که دارد مردم گیتی بخورشید بوم تا مرگ در مهرش گرفتار وفاداریش را باشم پرستار پاسنگه نوش کردن جام پرمی زرامین جام را صد بوسه در پی هر آنگاهی که جام می کشیدی به نقل از بوسگان شکر چشیدی چو می خوردی لبش زی خود کشیدی پس میشه کره میگون چشیدی بدینسان بود نه نهمه پیش رامین عقیق تلخ با یا قوت شیرین وقتی شاه از جنگ با رومیان پیروز بازگشت و به مرو رسید و از گیسو ماجرای کامروایی ویس و رامین را در شنید سخت برا و به سوی تافت و برادرش زرد را که نگهبان دژ بود نکوهش بسیار کرد رامین به یاری ویس و ندیمه از بام گذشت و به صحرا درآمد و با دیدگان آتشبار از آنجا دور شد ویس هم در دژ از جدایی محبوب بیقرار و اندوهگین در انتظار تقدیر نشست. است Thank <laughs> you. در سفر پیروز گرگشت به پیروزی و کام خیش برگشت سراسر ارمن و اران برفته نواب و باش از پیسر گرفته ز بخت خیش دیده روشنایی ز شاهان برده گوی پال چاهی کجا گفتار زرنگیس بشنود دلش پرتاب گشت و مغز پردو زکین دل همی جوشید بر جای زمانی دیر و آنگه جست برپای همی شد شاه با لشکر شتابان چو ابر و باد در کوه و بیابان زدیده دیدبان از دژنگه نگه کرد سیه ابری بدید از لشکر رو گرد چو بر درگاه روی زرد را دید تو گفتی لاله باد سرد را دید زکین زرد رویان در هم آورد بدو گفت ای دلم را بدترین درد مرا اندر جهان دادار داور رهاناد از شما هر دو برادر زنادانی که هستی می ندانی کرامین بر تو می خندد نهانی جان آگاه گشته تو نه آگاه به چون تو کس دری قایت چون اینگاه اگر رامین هزاران دان دانست چون این درها گشادن چون توانست چه سود از بند سخت و استواری تو با او نکردی استواری هرون نامی که من کردم به یک سال سراسر ننگ من کردی به دینها شده از جرس درها دایاگا شنید آواز گفتار شنچا به پیش ویس بانو تاخت چون باد ز شاهنشه مرو را آگهی داد بدو گفت اینک آمد شاه موبد زخاور خاور سر برآورد اختر بد همکنون آتشی بینی جهان سوز که با دودش جهان را شب و بدروز چود درماندند ویس و دای از چار فروهشتند رامین را به دیوار بشد رامین دوان بر کوه چون قرم روانش پر پرنهیب و دل پر از گرم خروشان بی دل و بی صبر و بی جفت دوان در کوها با دل همی گفت چه خواهی ای قضا از من چه خواهی که کارم را نیاری جز تباهی گهی جان مرا سختی نمایی گهی عیش مرا تلخی فزایی نباشد با دو چشمم عبر همتا که آن قطره است وین آشفته دریا چرا من رفت لختی بر سر کوه، دو چشم از گریه چون از بر کوه. قمه هجران و یاد دلربایش فرو بستند گویی هر دو پایش نبودش چاره جز نشستن زمانی بر دل و دل بر گرستن چو ویسه دل بر از رامین جدا ماند تو گویی در دهان اجدها ماند چو دیوانه دویدن در شبستان زنان دو دست سیمین بر گلستان هم از دیده رونده سیل گوهر هم از گردن گسسته اقد گوهر زتان برکند زر بفت بهاری سیاه پوشی جامع سوق باری دلش پر درد گشته روی پرگرد ناز موبعد یاد آمد زرد، همه تیمارش از بحر دلارام کجا زودور شد ناگاه و ناکام اگر صاحب دلان باب عنایت به گشایند بقیه داستان در برنامه آینده تقدیم می شود نوشته و چنزیم نادر وزیم با همکاری خایده، وفایی، سیمین سرخوش، مجید نجاحی، اسگرپور، محمود رحمانی پور، حسن ناهی، یوسف زمانی، همدانیان، فریدون اسماعیلی، زفیره داداشیان، ازرا، سیروس ابراهیم زاده، بهزاد فراهانی، و آذر پژوهش سیغی از علی تجویی تهیه کننده امیر حسین خانشهری زیر نظر امیر فریدون گرکانی